مقام امن و می بیغش و رفیق شفیق گرت مدام و شود زهی توفیق جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است هزار بار من این نکته کرده ام تحقیق دریغ و در که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق به معمنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت که در کمینگه عمرند قاطعانه تری بیا که تو وز لعل نگار و خنده جام حکایتی است که عقلش نمی کند دستی اگر چه موی میانت به چون منی نرسد خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق ثلاوتی که تو را در چه زنختان است به کنه آن نرسد صد هزار فکر امیر اگر به رنگ عقیقی شدش که من چه عجب که محر خاطم لعل تو هستم چه عقیق به خنده گفت که حافظ غلام طبع تو هم ببین که تا به چه حدم دم همی کند تحمیر